بسم الإله العالي أبدأ به ما قالي أهديتها لمنحا وتراوائع الخصالي راديوية صداية جند الله روي موجي يكسددو أعشاري هاف اف ام قد فيه بالذي جال به خيالي في مجمع رأيته يسعى إلى الكمالي رادیوی صدای جندالله برنامه از جمعه تا جمعه را خدمت شما تقدیم می <سی> نماید <الناس> <سی> این <الناس> برنامه شامل مطالب دینی، علمی، خبری، ادبی و تفریحی بوده روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به نشر میرسد. على <تصفيق> Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdul sifat bazati yaktaw bi hamto, waduru salawati firawan bar Rasuli Muazami Islam, Hazrati Muhammadi Mustafa Sallallahu Alaihi wasallam.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 شنوندگانی عزیز با اخبار این هفته از رادیو صدای جندالله خوش آمدید روز شنبه ویلایتی لغمان یک تانک با دو اسکر در مربوطات مهترلام نابود کردید هلمند 5 تن پلیس یاجر در اثر انفجار ماین در نوزاد کشته شدند ویلایتی غزنی در اثر یک انفجار در ده یک یک فرماندهان با یک اسکر به قتل رسید هلمند پنج عسكر اجیر در اثر انفجار ماین بر رنجر در سنگین کشته شدند با دغیس یک پسته دشمن در دره بوم فتح و مقادیر مهمات به غنیمت مجاهدین درآمد هلمند اشغالگران با متحمل شدن تلفات سنگین از گرشک گریختند باز هم ولایت هلمند هفت دسکری آمریکایی در اثر وجاری ماین بر تانک در نرسراش کشته و زخمی شدند. روز یک شنبه در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مسکو چندین تن کشته و زخمی شدند. چهار افسر پلیس و چهار جنگجوی مزرون در جمهوری چیچین کشته شدند. یک وازی پارلمان جدید سومالیات در یک حمله مسلحانه کشته شد. ولایت قندهار هفت تن پولیس در اثر انفجار ماین کشته و زخمی شدند. ویلایتی لغمان یک موتر در مربوطات محترلام تقریب و دو اسکر داران کشته شدند. ویلایتی پکتیا مقر ولسوالی احمد خیل مورد حمله راکتی مجاهدین قرار گرفت. ویلایتی ارزگان دو اسکر ارده یجیر به شمال قماندان در چار کشته شدند. قندهار تایی یک درگیری در معروف تن پلیسی محلی کشته شدند. میدان وردک تایی انفجار جداگانه در سید یک موتر با هفت اسکر از بین رفته است. ویلایتی اروزگان پنج اسکر اردو یجیر تایی یک حمله مسلخانه در دهروات کشته و زخمی شدند. ولایت پکتیکا در اثر دو انفجار در امنه شش اسکر کشته و زخمی شدند. ویلایتی هرات. در حمله دو ازکر با احساس افغان در شندند، سه ازکر آمریکایی کشته و زخمی شدند. ویلایتی کندوس، یک کارمند اداره جاسوسی دشمن در چاردره به قتل رسید. روز دوشنبه یک کانتینر کاروان لوجستکی دشمن در مربوطات قلات ولایت زابل تامه حریق گردید. ولایت هلمند، درگیری با اصاکر محافظ کاروان اکمالاتی دشمن در سنگین صورت گرفت. ویلایتی فرا، سه تن ملیشه امنیتی در جنگ فرارو، طلاق و تن دیگر زخمی گردیدند. در سر سیلاپ ها و عرضش باران در شمال غرب هندوستان حدود یک میلیون تن بیجا شدند. ننگر هار، شش پلیس یجیر تا یک حمله مسلحانه در خوگیانی کشته شدند. قنده یک تان و پنج اراد موترسایکل دشمن در معروف تخریب و هفت اسکر کشته و زخمی شدند. انفجار یک بمب که در یک سرویس شهری جابجا جا شده بود باعث کشته شدن 3 تن در ایراخ شد. ویلایتی لوگر 4 تن اشغالگر تا یک حمله مسلحانه در برکه برک, برک کشته و زخمی شدند. ویلایتی پروان در اثر انفجار مواین 4 پلیسی نظم آمی دشمن در شینواره کشته و زخمی شدند. ویلایتی بادغیس پسته اساکر وردی اجیر در مقر مورد حمله مجاهدین قرار گرفت. روز سه شنبه، در سر یک انفجار در دمشق چندین تن زخمی شدند ولایت غور پنج اسکر اجیر تا یک حمله مسلحانه در شهرک کشته و زخمی شدند باز هم ولایت بادغیس تا یک درگیری در غورماچ دو تن پلیس اجیر کشته و زخمی شدند باز هم ولایت زابل یک اسکر ارده اجیر تا یک حمله چرکی در شاجوی به قتل رسید ولایت لوگر یک تان و چهار اسکر دشمن تا یک حمله و انفجار نابود گردیدند شش تن اشغالگر در اثر انفجار ماین بر تانک در پنجواهی کشته و زخمی شدند هرات نو از کری ورده یجیر در اثر انفجار ماین در رباس سنگی کشته و زخمی شدند میدان وردک یک ارادموتری محافظین کاروان اکمالاتی دشمن در سید آباد با ماین تصادم نمود ولایت هلمند انفجار ماین در مساقله یک رنجر حکومت را با پنج اسکر یجیر نابو ساخت باس هم ولایت خندوس یک کانتینر ایک دشمن در چهر تا تامعی حریق گردید ولایتی بدخشان برخلاف فیلم آمیز به اسلام تظاهراتی در فیض آباد برپا گردید ولایتی لوگر تا یک حمله بر پوسته دشمن در چرخ سه اسکر دشمن کشته و زخمی شدند ولایتی کاپیسا یگ asker ta yak hamle musallahona dar Nujab koshta shod. Wilayati Lugar, kampanye asker eshghalgar dar marbutat-e Pul-e Alam mawrid-e hamle-ye mushaki qarar geft. Rooz-e 4 Shanbe, dar sar-e injari yak bomb ki nirouha-ye amniyati hadaf qarar dad, Turki koshta shodand. Qandahar, si asker mohafez-e karwan-e ikmalati dar Maiwan koshta va zakhmi Hilman یک تن در باباجی هدف سلاح درازنوف قرار گرفت. ولایتی لوگر، شش اشغالگر تای حادثات جداگانه در مربطات پولیالم کشته و زخمی شدند. با سمولات کندوز، یا کماندان، با دو اسکر در دشترچی با مجاهدین پیوستند. پکتیکا، در سر انفجار ماین در سر حوزه پنج اسکر دشمن کشته و زخمی شدند. مقامات اجیر فرا تصاویر نیمه برهنه اجساد شهدای مجاهدین امارت اسلامی را که روز سهش شما در منطقه چشمه میشک ولسوالی جواین این اولاد به شهادت رسیده بودن به نشر سپردن و آن را در اختیار رسانه ها قرار دادند. ما این عمل غیر انسانی و بزدیلانه را به شدت تقبیح می کنیم و این عمل را بسیار شرماور و توهین به اجساد شهده از طرف دشمن می دانیم این عمل برخلاف اصول جنگ یک جرم اخلاقی و توهین به اجساد مجاهدین می باشد گزارشات تازه از ولایت پنچیر می رسانند که در اثر حمله راکتی بر مستوفیات و مقام آن 8 تن پلیس اجیر کشته و زخمی شدند خبر می افزاید مجاهدین امارت اسلامی حواریه 5 بجای بامداد روز چهارشنبه بالای مراکز یا شده دشمن سه راکت را شلیک نمودند که دو راکتی آن به داخل ساختمانی مقام ولایت و یک مرمی آن به داخل مصافیت اصابت نمود. روز 5شنبه در اثر یک حمله فیدایی در لوگر هفت تن کشته و نو تن دیگر زخمی و سه تانگیشان تخریب گردید. باز هم ولیت لوگر کمپاین دشمن مورد حمله مشکی قرار گرفت و ماین دو اسکر را حلاک ساخت Kyloja Cikunar. Gazmia Sokirish-Rolgar, Darmarua, Sebor Mauridi Hamla, Karorgiravtsi. Kunar. Gazmia Sokirish-Rolgar, Ajironi Docheli, Dar Asmor Mauridi Hamla, Mujohidin Karorgiravtsi. Poljon ja Hbor. Nogoftena monotkimanbayi Khabarimo, Safai Interniti ja Morati Islamia Von يا من تداعو نهجنا ذكر حكيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجيما قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجيما قرآنكم فيه المصاب غدا جسيما قد ننسوه برجسهم لجسهم لجسهم فعل الأذين نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الثمي نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الثمي أنا دي والأس الهموم يا أمت يكفي السبت يكفي الوجوم إني أنا دي والأس الهموم يا أمت يكفي السبت يكفي الوجوم فقد بلغ الزبائن سيلهم المذلة والهوان فينا يسيم أين الحمية ما لها أعيت تقم يا للمذلة والهوان لا, لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم امالهم تها ويهين لا لن يدوم لهم امان لن يدوم فلتلههم امالهم تها ويهين فالنصر لا محال لا محال یعرو آداب نغفوا العدا او عزیز به بخش شعر و ادب خوش آمدید ما به خاطر معلومات هرچی بیشتری شما اشعار جالب و ادبی را خدمت شما تقدیم می نماییم در معنای اینکه وطن اساس ملت نیست آنچنان قطع اخووت کرده اند. بر بروطن تعمیر ملت کرده اند تا وطن را شمع محفل ساختند نوع انسان را قبائل ساختند جنت جستند در بئس القرار تا احل قومهم دار البوار این شجر جنت زعالم برده است تلخی پیکار بار آورده است مردم اندر جهان افسانه شد آدمی از آدمی بیگانه شد روح از تن رفت و هفت اندام ماند آدمیت گم شد و اقوام ماند تا سیاست مسندی مذهب گرفت انشجر در گلشنی مغرب گرفت قصه دین مسیحایی فسرد شعله شمع کلیسایی فسرد از قف از بی طاقتی درمانده ای مهرها از کف برون افشنده قوم عیسی بر کلیسا پا زده نقد آین چلی پا وازده دهریت چون جامعه مذهب درید مرسل از حضرت شیطان رسید انفلارنساوی باطل پرست سرمی او دیده مردم شکست نسخه بهر شاهنشاهان نویشت در گلی مادانهی پیکار کشت حقز تیغی خامهی او لخت لخت بودگر ایمانند آذر پیشه اش بس نقش تازه ای اندیشه اش مملکت را دین او معبود ساخت فکر او مزموم را محمود ساخت بوسه تا بر پای ان معبود زد نقد حق را بر عیار سود زد باطل از تعلیم او بالیده است حیل اندازی فن گردیده است طرح تدبیر زبون فرجام رخت الخسک در جاده ایام رخت شب به چشم اهل عالم چیده است مصلحت تزویر را نامیده است دا لم تبذل الروح احتسابا دعاء اللیلس همن فی عدانا در معنای این که ملت محمدیه نهایت زمانی هم ندارد که دوام این ملت شریفه موعود است در بخاران جوش بلبل دیدهی رستخیزی غنچه و گل دیدهی چون عروسان غنچه آراسته از زمین یک شهر انجم خواسته سبزه از عشقی سحر شویده ای از سرود آب جو خوابیده ای غنچه بر میدمت از شاخصار گیردش بادی نسیم اندر کنار غنچه از دست گلچین خون شود از چمن مانند بو بیرون رود بست قمری آشیان بل پرید قطره شب رسید و بو رمید رخصتی سطلالهی ناپایدار کم نسازد رونقی فصلی بهار از زیانی گنج فراوانش همان محفیلی گلهای خندانش همان فصل گل از نسترن باقی است از گل و سر و سمن باقی تر است کان گوهر پروری گوهرگری کم نگردد از شکست گوهری صبح از مشرق زی مغرب شام رفت جامی روز از خمی ایام رفت باده ها خوردند و صحبا باقی است دوش خون گشت و فردا باقی است همچنان از فردهای پی سپر هست تقویم اومم پاینده در سفر است و صحبت قائم است فرد راهگیر از تو ملت قائم است ذات او دیگر صفاتش دیگر است سنتی مرگ و حیاتش دیگر است فرد برمی خیزد از مشتی گلی قوم زاید از دلی صاحب دلی فرد پوری 670 است و بس فرد پوری 670 است و بس قوم را 100 سال مثل یک نفس زنده فرد از ارتباط جان و تن زنده قوم از حفظ ناموسی کوهن مرگ فرد از خشکی رودی حیات مرگ قوم از ترک مقصود حیات گرچه ملت هم بمیرت مثل فرد از اجل فرمان پذیرت مثل فرد امتی مسلم زی آیات خداست اصل از هنگامه قال و براست از اجل این قوم بی پرواستی استوار از نحن نزل ناستی ذکر قائم از قیامی ذاکر است از دوام او دوام ذاکر است تا خدا ان یطفی او فرموده است تا خدا ان یطفی او فرموده است از فسردن این شرق آسوده است امتی در حق پرستی کاملی امت محبوب هر صاحب دلی حق برون آورد انتیقی اصیل از نیامی آرزوهای خلیل تا صداقت زنده گردد از دمش غیر حق سوزد زبرقی پی همش ما کتوحید خدا را حجتیم حافظی رمز کتاب و حکمتیم آسمان با ما سری پیکار داشت در بغل یک فتنه تا تار داشت بندها از پا گوشت آن فتنه را بر سر ما آزموت آن فتنه را فتنهی پا مالی هش محشری کشتهی تیغی نگاهش محشری خفتست آشوب در آغوش او صبح امروزی نزاید دوشی او تو مگر از چرخ کش رفتار پورس زانه و آین کهند پندار پورس آتش تا تاریان گلزار کیست شاله های او گلی دستار کیست زنک ما را فطرت ابراهیمیست هم به مولا نسبت ابراهیمیست از ته آتش برندازیم گل نار هر نمرود را سازیم گل شاله های انقلابی روزگار چون به باقی ما رسد گردد بخار رومیان را گرمی بازاری نماند آن جهانگیری جهانداری نماند شیشه ساسانیان در خون نشه است رونق خومخانه یونان شکست مصر هم در امتحان ناکام ماند او تهی اهرام ماند در جهان بانگی آزان بود و هست ملت اسلامیان بود و هست عشق از سوز دلی ما زنده است الشرار لا اله تعبنده است گرچه مثلی غنچت دلگیری ما گلستان میرد میرت اگر میری ما گلستان میرد میرت اگر میری ما, ما فما ذا یکتبو تاریخ عنده وما العتبى وما خارت قوانا إذا لم تبذل الروح احتسابا دعاء الليل سهم في عدانا مرواريدي هفتاة فالجود يفني المال قبل فنائه ولالبخل فيما للشحيح يفيد زلات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضايت وخشنودي حتى از بني عباس کرده بود سه روز همچنان به دنبال شطورش میگشت او مردی ثروتمند بود و خداوند جل جلاله او به او مال شطور گوسفند و فرزندان دختر و پسر عطا کرده بود خانواده او در کنار رود در دیار بنی عباس در کمال آسایش و راحتی زندگی میکردند و اصلا گمان نمیبردند که حوادیسی روزگار به سراغشان خواهد آمد و بلاها آنها را ریشکن خواهد کرد Jäära kida l-lejli masruram bi' eħli inna l-hawadi t-akkadijat rukuna ashara. Aikasi kider awa li xabbaa ja xadmoni xabida ii, ċiba sahawadith, sahargahan xabi kun bizanan. inki hamahana wada budan, wa amwallu xon nisba on habut, pedaru xon on jo nabud, wa badunbali xuturikum xudaraftabut. Darin hangam, kudawan jalla joaluhu, سیل خروشان بر آنها فرستاد که صخره سنگه های بزرگ را همانند خاک با خود می برد. آخر شب سیل وارد خانه آنان شد و همه آنها را نابود کرد و خانههایشان را ویران نمود. تمام گوزفندان و شتران و اموال و همه خانواده را با خود برد و همه مردند. گویا که اصلا وجود نداشتند و داستانه شدند که مردم برای همدیگر تعریف می سه روز بعد پدر به آنجا برگشت هیچ کسی را ندید هیچ صدایی را نشنید محل سکونتش به میدان صاف تبدیل شده بود یا الله چی بلای بزرگه نه زن نه پیسر نه دختر نه نه گاو نه و نه درهم و دینار و نه لباس باقی مانده بود هیچ چیز نمانده بود چی مصیبتی وحشتناکه افزون بر این بلای بزرگ زمانه که شطورش فرار شطر و او میکوشد دو مشطور را بگیرد شطور لگده به چهره اش زد و بر اثر آن هر دو چشم او کور شدند آن مرد از آنجا بلند شد و در بیابان فریاد می زد تا کسی دست او را بگیرد و به جای بیبرد مدت بعد با دینوشین صدای او را شنید نزد او آمد و او را پیش ولید ابن عبدالملک خلیفه دمشق برد و خلیفه را از ماجرا با خبر کرد خلیفه گفت الان در چه حالی گفت از خدا راضی هستم، این سخنی بزرگ است که بنده مسلمان خدا آن را بر زبان آورده است، مسلمانی که توحید در قلبش جا گرفته بود، آن را بر زبان آورد، این درس عبرت است برای آنان که پند می گیرن. در این ماجره رضایت از خدا نمایان است، کسی که راضی نمی شود و به آنچی مقدر شده تن نمی اگر میتواند در زمین تونل حفر کند، Yonar duboni ba osmon biza du bolovirawat. Falyam dud bi sababin ilasama itumaliakwa faliyam dur halyud hiban na kayuduhu mayagil. Resmoni basak fihona bi owezat, wasupas keshtan wa halq awizkunat on mayat. وتصار هذه المرك يشرو ود بعد ان هغام توکل کنندگان را دوست می دارد بسیار از افراد هنگام تصمیم گیری نگران و مزتریب میشوند و تردید و دودیلی آنها را فرا می گیرد و درد سر و نراحتیشان ادامه می آبد. انسان باید در کارهایش مشورت کند و استخاره نماید و پس از تدبر و اندشه به فکر راه اقدام کند که به گمان غالبش بهتر است بدون اینکه قدم به عقیب بگذارد بندباید پس از مشورت و استخاره هممت کند، توکل نماید و با قاطعیت تصمیم بگیرد، تا زندگی آکنده از دودیلی و ازطراب را پایان دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز احد و در حالی که بالای مینبر بود، با مردم مشورت نمود. نظری مردم این بود که برای جنگ به بیرونی مدینه بیروند، لذا ایشان لباس رزم بتن کرد و شمشیرش را به دست گرفت. گفتند ای پیامبر خدا شاید شما را مجبور کردیم لذا در مدینه بمانید بهتر است فرمود برای هیچ پیامبری شایسته نیست که وقتی لباس رزم بر تن کرد آن را بیرون بیاورد تا این که خدا بین او و دشمنش قضاوت نماید بدین سان پیامبر صلی الله علیه و سلام تصمیم قاطع گرفت که در بیرون مدینه بجنگد کار بدودیلی و تردید نیاز ندارد بلکه با تصمیم قاطعانه و جدیت و اقدام نیاز دارد شجاعت و قهرمانی و فرماندهی در این است که انسان در تصمیم گیری قاطعیت داشته باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم با اصحابش در جنگ بدر رایزنی کرد و شاورهم فی الامر و در, و در کار با آنها مشورت کن و در کار با آنها مشورت کن و امرهم شورا بینهم و کارشون با مشورت همدیگر انجام می شود، از خواب نظر دادند و پیامبر صلی اللہ علیه و سلم تصمیم جدی گرفت و اقدام کرد و به چیز توجه نکرد. دودیلی و تردید فکر را فاسد، همت را ضعیف، اراده را سست، تلاش را نامرتب و حرکت را کند می کند. تردید و دودیلی بیماری و مرض است که علاج آن فقط جدیت و پایداری و ثبات است، مردمان را شناسم که در تصمیمهای کوچک و کارهای ناچیز ساله که عقب و جلو می کنند چون آنها در مورد خود و کسانی که اطراف آنها هستند تردید دارند و اضطراب روحیه آنها را فرا گرفته است آنها به سستی و کندی اجازه داده تا به روحیه آنان سرایت کند و گذاشته تا پرشان خاطری به دیدار ازهان و افکارش بیاید انسان باید پس از بررسی واقعه و تدبر در قضیه و مشورت با اهل نظر و استخاره از پروردگار آسمانها و زمین اقدام کند و عقیب نرود و آنچی را که به ذهنش میرسد به درنگ انجام دهد. ابو رضی الله عنه پیش از جنگیدن با مرتدین از مردم نظر خواست. همه بنا جنگیدن رأی دادن. اما دل و سینه ابو بکر صدیق رضی الله عنه به جنگ با مرتدها گواهی داد. چرا که این رویه باعث قدرت گرفتن اسلام و ریشکن شدن فتنه و نابودی گروه بود که علیه قداست دین شوریده بودن. او در پرتاب نور الهی بر این نظر بود که جنگیدن بهتر است. از این رو قاطعانه تصمیم گرفت و سوگند یاد کرد و گفت سوگن به ذاتی که جانم در دست اوست با کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد می جنگم. سوگن به خدا اگر از دادن زانوبند شطوره که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان زکات می داده خودداری کنند برای گرفتن آن می جنگم. عمر رضی الله عنه گفت وقتی دانستم که خداوند جل جلاله به ابو بکر صدیق رضی الله عنه در این بار شرح صدر داده دریافتم که آنچه او میگوید حق است. خلاصه اینکه که ابو بکر رضی الله عنه با دیدگاه خجسته که در آن هیچ اشتباه و انحرافی نبود پیش رفت و پیروز شد. تا که دل واپسونیگران میمانیم و تا که در جا میزنیم تا که در تصمیمگیری متردد و دو دل خواهیم بود؟ اذا کنت ذا غأین فکنده ذا فا این فساد الرأی انت تردده. هرگاه فکر و نظر داشتی قاطعیت داشته باش، چون تردید و دودیلی رأی و فکر را فاسد میکند. یکی از های منافقین و سرشت آنها این بود که با تکرار زیادی گفته ها و بازبینی در نظر برنامه و نقشه را باشکست مواجه میکردند، La ukarajufi kumme zadukum illa xobella ula aularuhilella kumme avuruna kumme ulfitne. Agarmunu afikon hamrohi jihad ġiħot mi me omadan, chizie juus xarrufasot bar sumona me afzudan, va basuraaddar mioni sumob harakat me kardan, va dar holiki mioni sumob fitna u oxub me andortan. Alladina kolu li ichuani himu akadu la kutilu. قل فذرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین. آنان کسانی هستند که نشستند و از جنگ کنار گیری کردند و نسبت به برادران خود گفتند اگر از ما اطاعت میکردن کشته نمی شدند بگو پس مرگ را از خود دور بدارید اگر راست میگوید منافقان همیشه واژه های همچون اگر به زبان می آورند و ای کاش را دوست دارند و عاشق شاید و بلکی هستند پس زندگی آنها بر تردید و دودیلی و امروز فردا کردن استوار است. مذبذبین بین ذلك لا اله اولئی ولا اله اولئ در این میان سرگشته و مترددند نه با اینان و نه با آنان هستند منافقان گاهی با ما هستند و گاهی با کافران یک بار اینجا و بار دیگر آنجا چنانچه در حدیث آمده است، مانند گویش که در میان دو گله گشت میزند. آنها هنگام بروز بحرانها میگویند: لونا علم و قتال لتبان اگر جنگ سراغ میداشتیم، از شما پیروی میکردیم. آنها بر خدا و بر خودشان دروغ میبندند، بلکه آنان در شرایط بحرانی صحنه را ترک میکنند و پس از آرام یافتن اوزامه آیند. یکی را میبینی که میگوید. و من اجازه بده تا بمانم و مرا و چارت نمکن. براستی که چنین کسی تصمیم جز شکست و بازماندن ندارد، منافقان هنگام جنگ احزاب گفتن خانه های ما بدون حفاظ و نااستوار است. در حالی که چین نبود، بلکه آنها میخواستند از وظیفه شانه خالی کنند و از حق روشن تفره بروند و بگرهزن. Ja siidu kveletel, te misrispall di ajisin, mukoterin li kulliva din riskuun jarodu, jadiduk velelju. Este war war war war joo bax, mukmendorojia sabat war katarijetest. Inna mal mukminuna laddina emenu billahi warosulihi tummalam jarotebu. Mukminon kasoni hastan kibahudawa pajan imon war dan, shak nakardan. اما منافقان در شک و تردید به سر برند و در تصمیم خود مزطرب و دلواپسند و به عقیب می گریزند و پیمانهای خود را میشکنند وقت نشانه های درستی یک کار درخشیدند و گمان غالب این بود که کار درست است و فایده دارد، انسان باید بدون اینکه این طرف و طرف کند به جلوگان بردارد و با جدیت پیش رود. اطرح لیتم و سیف و لعله ومضی که على علی کفی البطل وجه های همچون ایکاش بعدا و شاید را دور بیندازد و امانند شمشیر بر پنجه باطل فرود بیا مرده در طلاق دادن زنش که او را بسیار رنج داده بود تردید داشت موضوع دودیلی و تردیدش را با حکیمه در میان گذاشت حکیم گفت چند سال با این زن گزرانده ای؟ گفت چهار سال حکیم گفت چهار سال است که تو زهر می درست است که باید صبر و تحمل کرد. اما تا کی؟ انسانی هوشیار و زیرک می که انکار درست می یا نه. همچنین می‌داند که آیا کار تداوم می و تمام می شود یا متوقفون ها تمام می‌گردد. خلاصه اینکه این که باید قاطعانه تصمیم گرفت. شاعر می‌گوید: و علاج ما لا تشتهی هن نفس تعجیل الفراق علاج آنچه برای نفس خوشایند نیست این است که هر چیز از آن جدا شوی بررسی احوال و زندگی مردم نشان می‌دهد که آنان در بسیاری از موارد به دو و تردید دچار می‌شوند اما تردید و دودیلی آنها در چهار مورد است اول در درس خواندن و انتخاب رشته و تخصص فرد نمی‌داند که کدام رشته را انتخاب کند و مدتی را سرگردان گذراند. دانشجویان را میشناسم که به سبب دودیلی و تردید در انتخاب رشته سالها از عمرشان را به هدر داده اند. بعضی قبل از زمان نام متردد هستند و همچنان در شک و دودیلی به سر میورند برند. تا اینکه زمانی زمان نام تمام می شود بعضی هم یک سال یا دو سال در یک رشته تحصیل می کنند و سپس تغییر رشته می دهند. از حقوق و معارف اسلامی به اقتصاد تغییر رشته می دهند، و سپس این رشته را نیز رها می‌کنند و رشته پزشکی را انتخاب می‌نمایند و این گونه عمرشان بهوده و به هدف تلف می شود در صورتی که بررسی مشورت و استخاره قبل از انتخاب رشته از هدر رفتن وقت و زای شدن عمر جلوگیری می کند و باعث می شود تا انسان با انتخاب رشته مناسب بخواسته اش برسد دوم در انتخاب کار و شغل مناسب بعضیها نمیدانند که چی کاری برای آنها مناسب است. یک شغل را انتخاب میکنند، سپس آن را ترک نموده و شرکت دیگر میروند، شرکت را رها میکنند و به یک کار تجاری میپردازند. و بالاخره همه چیز را از دست میدهند و فقیر و تنگ دست باقی میمانند و به کار و خانوادگی میشوند. به اینها میگویم هر کس که در از روزی برایش گشوده شد، همان را محکم بگیرد. چون روزی از همان جامعه آید و هر کس یک در را محکم بگیرد ورود از آن در برایش آسان می شود و گشودن آن را یاد میگیرد سووم تردید در, در انتخاب همسر و ازدواج بیشتر جوانان در انتخاب همسر دچار دو و اضطراب می شوند گاهی در انتخاب همسر رأی دیگران دخیل است پدر برای پسرش زن غیر از آن که خود پسر یا مادرش انتخاب کرده مناسب می بیند. پس گاهی پسر بدلخواه پدرش زن میگیرد ما بعد این ترتیب همسره گیرش می آید که او را دوست ندارد یا برایش ایده آل نیست توصیه من به جوانان این است که در قضیه ازدواج و انتخاب همسر وقت دختری را از نظر دیانت و زیبایی پسندیده و با او توافق داشتند اقدام کنند چون ازدواج سرنوشت انسان را رقم می زند پس نباید به صورت تخمینی و نسنجیده اقدام کرد چهارم، در مسئله طلاق نیز دو دیلی افراد را فرا می گیرد، روز دیلش می که از هم جدا شوند و روزی می که زندگی کنند و روزی می که زندگی با همسرش را به پایان بیرساند و خسته می شود و افسرده میگردد و کارش نابسامان می گردد، انسان باید با تصمیم قاطع خود به ها و تنگناهای روانی پایان دهد. زندگی فقط یک مرتبه است و امروز هرگز تکرار نمی شود و لحظه که میگذرد هرگز باز نمی گردد. پس انسان باید خودش سعادت را جلب کند و قاطعیت در تصمیم گیری این سعادت را فراهم می نماید بنده مسلمان هرگاه اراده کاری بکند و پس از استخاره و مشورت تصمیم بگیرد و بر خدا توکل نماید چنین می شود که گفتند هرگاه اراده کند bagaawqib wa fajamikar nme andeshat wa iqdam mekonat iqdamychn iqdam sil khuroshan wa qatayyat shamshir wa tasmimychn tasmim rozgar wa haraketychn haraket sabedam <tavani>, suhani jazab dar surat sagadat ma که وظیفه خودمان را در قبال خدا و سپس بندگان خدا انجام دهیم حرف زدن و زیبا گفتن آسان است اما انجام کارهای زیبا و داشتن صفات پسندیده و عمل کردن با آنچی میگوییم سخت است ات الناس النس بیلبری و تنسون انفوسکم و انتون تطلون الكتاب افلا تعقلون آیا مردم را به نیکی امر میکنید و خودتان را فراموش میکنید و حال که شما کتاب را میخانید آیا خیرت نمی ورزید؟ کسی که امر به معروف می کند و خودش کار خوب انجام نمیدهد و از منکر و کار زشت باز میدارد و خودش آن را مرتکب می شود همانطور که در حدیث آمده روز قیامت به جهنم انداخته می شود و در حالی که روده‌هایش بیرون آمده اند در جهنم دور میزند زند همانند که پیرامون خرمنکوب دور میزند. دو دوزخیان از او علت و راز حلاکتش را میپرسند، میگوید من شما را به کار خوب فرمان میدادم و خودم آن را انجام نمیدادم و شما را از کار زشت نهی میکردم و خودم مرتکب آن میشدم. یا ایوه الرجل المعلم غیره هلال نفسی که كا کان ذات تعليم ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی آیا نباید خودت را تعلیم بدهی و عز مشهور ابو معاذ رازی استاد و به قدر گریست. که مردم را به گریه انداخت و سپس گفت و غیر تقی یامر ناس به تقا طبیب یدوی ناس و هو علیل <تصفح> کسی که پرهیزگار نیست و مردم را به پرهیزگاری امر می کند همچون پزشک است که مردم را مداوا می کند و خودش بمار است برخی از سلف هرگاه میخواستند مردم را به صدقه دادن امر کنند اول خودشان صدقه میدادند و سپس به آنها میگفتند که صدقه بدهید از این رو مردم میپذیرفتند در کتاب خاندم که واعظ در قرون برتر میخواست مردم را به آزاد کردن برده تشویق و امر نماید بسیار از بردگان از او خواسته بودند تا از مردم بخواهد که بردگان را آزاد کنند او تا مدت طولانی پول جمع کرد و سپس بردهی را آزاد نمود انگاه مردم را به آزاد کردن بردگان امر نمود و مردم بردگان زیاده آزاد کردند ری مترینلییکلی با نرمی و آرامش می توان به هدف رسید. هرگاه خواستین نیازه هایت برآورده شوند نرمی را میانجی قرار بده که سفاارشی آن رد نمی شود. رانوندههایی که میخواهد اتومبیلش را از کوچه تنگ و بردهد که فقط به اندازه یک خودرو عرض دارد، باید کاملا احتیاط کند و اتومبیلش را به آرامی از کوچه تنگ عبور دهد. حال اگر راننده بخواهد اتومبیل را با سرعت در این کوچه بیراند حتما اتومبیلش به دو طرف میخورد و خراب می شود. ماشین همان ماشین است و سرعتی کم و زیاد راه را کم و زیاد نمی کند. فقط روش عبور از کوچه تنگ فرق می کند، که با احتیاط رد شد و دیگری به احتیاط شتاب کرد و زیان دید نحال کوچکی که می اگر کم کم و به اندازه آبیاری شود رشد می کند اما اگر تمام این آبها یک دفعه روی آن ریخته شود از ریشه برون میآید. مقدار آب یکی است اما روش آبیاری فرق می کند هر کس لباس خود را آرام و آهسته در بیاورد لباس او سالم خواهد مان، اما کسی که با تمام قدرت لباس خود را از تنش بیرون بکشد، لباسش پاره خواهد شد. برادران یوسف لباس یوسف علیه السلام را درآوردند و گفتند که او را گرگ خورده است. نشان دروگوی آنها این بود که لباس یوسف علیه السلام پاره نشده بود، زیرا آنها با دقت و با نرمی لباس او را بیرون کشیده بودند، و اگر آنطور که آنها می گفتند او را گرگ خورده بود لباسش پاره پاره می شد. زندگی ما به نرمی احتیاج دارد. با خودمان به نرمی رفتار کنیم. چنان که در حدیث آمده است. خداوند مهربان است. و نرمی و مهربانی را دوست می دارد. با زنان مهربان باشید. در ابتدای ها چوبه که ترکه ها ساخته اند نوشته شده است. آهسته عبور کنید چون کسی که آهسته و با نرمی می نمی افتد و کسی که با شتاب می رود شاید در قهر آب بیفتد. در خاطرات یکی از عدیبان سوریا که در شهر السلمیه سکونت داشت آمده است. که او می خواست با موتور سایکل از روی یکی از پلهای چوبی که ترکها ها ساخته اند عبور کند. آنها پل را طوری ساخته اند که می توان با موتور سایکل آهسته و با احتیاط عبور کرد. این مرد می گوید من با سرعت و شتاب روی پل حرکت کردم، وقتی بالای پل رسیدم به این سو و سو نگاه نمودم، به آنکه با خودم و موتورم به نرمی و متانت رفتار کرده باشم، ناگهان نگاه هم به خطر رفت و با موتور سایکل داخلی آب افتادم. در ورودی باغه های گل در بعضی از شهرهای اروپایی، تابلوهای نصب شده که روی آنها نوشته اند، با احتیاط و آرام موازب باش. چون کسی که با سرعت داخل می شود آن گیاه زیبارا نمی بیند و سلامت آن گل زیبارا به خطر می اندازد و ممکن است آن را تلفو نابود کند زیرا او احتیاط نکرده و به نرمی رفتار ننموده است. یک معادله تربیتی هست که میگوید گنجشک مانند زنبور عسل دقت و احتیاط نمی کند در حدیث آمده است مؤمن مانند زنبور عسل است زیبا می خورد و زیبا پس می دید. و هرگاه روی شاخهی بینشیند آن را وقتی زنبوری عسل روی گل بینشیند گل هرگز احساس نمی کند زنبوری عسل به آرامی شهد گل را میمکد و به آنچی می خواهد دست می آباد. گنجشک با وجود بدن ضعیفش با نشستن روی خوشه ها مردم را خبر می کند. گنجشک هنگام نشستن طور شتاب میکند که گاهی به زمین می خورد و آسیب می بیند. همواره داستان نقاش هندی را به خاطر می آوردم. او نقاشی زبایی کشید. او خوشه گندمی را نقاشی کرد که گنجوشک روی آن نشسته بود. این خوشه پر از دانه و دارای ساقه بلند و زبایی بود. پادشاه این نقاشی را بر دوار کاخ خود نسب کرد و مردم این تابلو را به او تبریک گفتند و از کار زبای نقاش تعریف کردند. در میان ازدحام جمعیت مرد فقیر وارد شد، و به تابلوی نقاشی اعتراض کرد و گفت که اشتباه هست. مردم برویش فریاد زدن چون او با اجماع مخالفت کرده بود. پادشاه با نرمی مرد فقیر را نزد خود خاند و گفت تو چی میگویی؟ گفت نقاشی این تابلو اشتباه هست. پادشاه گفت چرا؟ گفت نقاش گنجشک را روی خوشه گندم نقاشی کرده و خوشه را همچنان راست و قد کشیده گذاشته است و این اشتباه میباشد. چون وقت گنجشک روی خوشه گندم بنشیند خوشه را کج میکند زیرا گنجشک تند و با شتاب روی خوشه منشیند پادشاه گفت راست میگویی و انگاه تابلو را پایین آورد و جایزه نقاش را از او پس گرفت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 فنائه وللبقل في مال شحيح يزيد فلا تلتمسرزق بعيش مقدر لكل غد مرزق يعود جديد إدرياء إدرياء إدرياء إدرياء مني فؤادي والنحوني سلاحي أم تطي والمنوني خذوا مني فؤاد إدرياء برنامج تحليلي اطيصه والمنوني خذوا مني فؤادي وامنعوني سلاحي اطيصه والمنوني الدوريا بوستابي وقاي مهمي لم صوت الاعداء وسرنا كالقطيع بكل ai رضينا ان نكون لهم ذيولا ونلبس شما آنها سرزمین های شما را به زور اشغال کرده و منابع و زیربناهای اقتصادی شما را متصرف شده و به چپاول سرمایه های امت شما پرداخته بوده. بر بردین و ارزش‌های های اسلامی شما و امت شما یورش برده و سخت به فکر براندازی دین، فرهنگ و ارزش‌های های اسلامی شما اند بر ساحت پیامبر گرامیتان تان و به کتاب مقدستان توهین و احانت روا می دارند تان را به تمسخر گرفته و امت شما را روبه پرتگاه زلالت و گمراهی سوق می دهند جهان خوران مستقبر سلیبی چون در گرسنه به جان امت شما افتیده و هر یکی ایشان انجامی بیشترین جنایت را دارند Omri Kova il-hodiin noutuu, ja hänen ruoansa on joutunut demokratian muodon, ja hänen ja hänen ruoansa on joutunut muodon, کمر بسته و کشتن و تیکپار کردن ای افراد این حضرت های را وظیفه دینی و ویجانی خیش شمرده و جنگ و مبارزه با حرکت های اسلامی را یک وجیبه ملی برای خیش تلقی می همه زعما و رهبرانشان این یورش و نبرد را یک جنگ تمام عیار سلیبی دانسته و میدانند. چنانچه فرعان بزرگشان جورج دبلیو بوش در آوان حملات 11 سپتامبر سلیبی بودن این جنگ را به جهانیان حویده ساخت. همه حکام غرب اندیشه براندازی امت شما را در سر دارند. زعما و حکام شما را از بردگان اصیل و وفادار خش انتخاب نموده و پلانهای سلیبی خش را توسط آنان بر شما و امت اسلامی شما تحمیل می کنند. رسانه های کشور های اسلامی یا مستقیم از اشغالگران بوده و یا اینکه غیر مستقیم اهداف و برنامه هایشان را به پیش می برند علما روحانیون و واعظان دینی امت اسلامی شما بیشترشان دلبختگان دلار و متاع مادی بوده و پوشیدن حقایق و بیان منافی زرگویان و مستقبرین جوزی و جایبی دینی دانیسته و مسلمانان را از دست بردن به سلاح جهاد و مقاومت مسلحانه معنی میکنند علمای درباره در افغانستان مردم را از استادگی در مقابل حکومت تاغوتی کابل معن نموده و تمام کرسی های قضاوت و محاکم دولتی را در اختیار دارند به سلاح روشنفکران و اصحاب قلم نیز بدتر از روحانیونند اینان استاده شدن در کنار نظام های غرب را یک ضرورت ملی دانسته و مخالفت با این گونه نظامها را تباهی و بربادی ملت های مسلمان می‌داند. در تمام مراکز علمی و پهندون های کشورهای اسلامی آنچه تدریس می شود گراف شک و تردید را می‌افزاید. و از یقیده جوانان کاسته و یقین و باور را از ایشان به یغما می برد. هرچند سطح علمی محصولین و طلاب ملتای ما بالا می رود، یقین و باورشان نزول نموده و قوای شکاکیتشان افزون می شود. در بیشتر کشورهای اسلامی دینداری و اعتقاد باور و باورهای دینی در بین ارتشیان عیب شمرده شده و با دوری نمودن از دین افسران همدیگر را توصیه می کنند. این است وضعیت جهان و امت شما. امتی که امروز در زیر یوغی اشغالگران و اعبارشان چنین زار و زبون جان میدهد دیگر هیچ امیدی نیست الا امید به شما نسل نو به شما که از سر اخلاص قد علم کرده و به اعتقاد راسق دست به مقاومت و مبارزه زده و تا برای کار آوردن یک نظام اسلامی جان بازی کنید کشمان امید امت اسلامی به شما دوخته شده اوسرای مسلمان در زندان‌های کفری امید آزادیشان را به شما بسته اند مادران بعفه شده اعاده حیثیت خیش در دست شما می دارند یتیمان امت توقع حمایه و سرپرستی را از شما دارند مدارس و مساجد تخریب شده آبادی و باسازی خیش را از شما تعم دارند ویلاخره امید توقع، تام، آرزو و دل بستگی همه به شماست پس حالا شما در چی فکرید؟ آیا می خواهید ملتهای خشده زعامت و رهبری دینی و اسلامی نموده و در راه آزادی و آسایششان جان دهید یا اینکه که فریفتهی ای فریب و نایرنگ دشمنان الهی شده و به و برق و تجملات مادی و ظاهریشان دل بسته و حلقه های غلامیشان را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 و نگذارید او دهر و ارازل زمان هر دمی به دین قرآن و پیامبرتان تازیده و توهین و ایهانت نمایند ناگزارید که دیگر سرزمین های شما را دشمنان دین اشغال نموده و منابع و ذخایر مادی سرزمین های شما را به غارت و یغما ببرند بخیزید تمام امور زندگی ملت‌های خش را به دست گرفته و بناهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره امت خش را به دست گیرید برپایی یک خلافت ناب اسلامی نیاز به شما دارد بخیزید که تنها راه پیروزی و سرفرازی شما همانا در جهاد مقدس است جهادی که همه کفار و مشرکین دنیا سخت از آن وحشت و تنفر دارند به خداوند متعال و پیامبرتان سخت دوستدار و طرفدار آنند هیی علا الجهاد یا شباب المسلمین اینی <ساسع> لم اعیش لی ادوق ولا لی ادوب فی خضن حنونی لم اعیش لی ادوق ولا لی في فی خضن Läkiin käyvä ja aziz, baa Dani ykterana Barnoma maa niizbaa paajan meresed ta bernamme dägar Allahu ya Allah الله یا الله الله یا الله بر دشمن ما ورا انهر افتیدا ظلم و ستم بلای مرد و زن باریدا خونی شهیدانش در دریا جور گردیدا از آش کی خون او مزیزان حالا لرویدا از کی خون او مزیزان حالا لرویدا اللہ یا الله اللہ یا اللہ توفیق بده یارب که تا غیرت با جوش آید قلبی جوانانی بخواب رفته با هوش آید فریاد محبوسان زندان ها با گوش آید Shahdi shahadat bar hu xush xush ayat. Shahdi shahadat bar hamagun xush xush ayat. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. ای مومین آنی ما وران ان نهر بپا در راه حق بهری جهادی با سفا خیزید در شهر و ده و قریه و در همجا یک جا به ما خیزید بهری خدا خیزید یک جا به ما خیزید بهرى خدا خیزید الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله بر که جست و شعر میدانی نبر نیست Juzhuk mi allah hukm mi hat hukm-e digar kas nes? dar rahi o janbaz-e Kori abas ham nast labbaik be go wo, sar, الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله،, الله, الله،, الله, الله ای دوست چرا غافل شدی از دین و در یاد نیاوردی گذشته گانینت نامت لرزان شده در پیش دشمن پا و دستانت ایوی بر حالت ایوی بر جانت ایوی بر حالت ایوی بر جانت الله یا الله الله یا الله Allahu ya Allah Allahu ya Allah